سال 1333 در شهر یز آموزش های ابتدایی و دبیرستان را در شهر یز به پایان بسندند و پس از گذراندن دانشسرای تربیت معلم از سال 1357 دبیر آموزش و پرورش شهرهای یز اصفهان و تهران بودند در سال 1361 آموزش های دینی سرایش عبستا و چگونگی برگزاری آینهای سنتی زرتشتیان را نزد موبدان، فیروز آزرگشست، بهمن اهورائی و مهوان فراوهر در شهر یزد فرا گرفته و اکنون سی و سال از که در جایگاه موبدی خدمت می کنند. در سال 1374 در دانشگده زرتشتیان هندوستان پذیرفته شده و پس از گذراندن آموزش‌های دینی، اوستا شناسی و شناخت ویژگی‌های بینش زرتشت در سال 1380 پس از ارائه پایاننامه با جستار آداب و رسوم و آیین‌های سنتی زرتشتیان ایران، دانشنامه دکترای فلسفه زرتشت را از آن دانشکده دریافت نمودند. سالهای پس از آن در نهادهای زرتشتیان یزد و اصفهان و تهران به آموزش دین زرتشت پرداخته و در پایان دبیر دینی دبیرستان فیروز بهرام تهران بوده است. هموند سازمان جوانان زرتشتی یزد، هموند انجمن دینی زرتشتیان یزد، همچنین دو دوره هموند انجمن موبدان ایران بودند. ایشان یکی از شاگردان موبد رستم بوده و در پاسخگویی به پرسش های دینی در نشست فرهنگی با ایشان همکاری داشتند. موبد کروش نیکنام، سرپرست دوره های آموزش هیربودی یا آموزگار دین زرتشت به سال 1381 در شهر تهران و 1395 در پاریس بودند. و در این دوره ها آموزش فلسفه زرتشت سرایش اوستا و تفسیر سرودهای گاتها را بر دوش داشتند. موبت بزرگوارمان عضو هیئت علمی مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب در ایران بوده و سخنران های فرهنگی در دانشگاه فردوسی مشهد، مازندران و کاشان بودند. موبت نیکنام در کرار ها و مقالههایی که دارند تاکنون پنج جلد نسل و کتاب را از خود به یادگار گذاشتند که برخی از آنها به چاپ پنجم نیز رسیده است. کتاب بسیار ارزشمند از نوروز تا نوروز را به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی ایران در سال 1374 به نگارش درآوردند. کتاب‌های آین اختیار و اندرزنامه درسنامه را در سال 1385 و نزک های تنکاشی در زندگی و اندیشه زرتشت و کتاب ارزشمند یادگار گیرین را به سال 1394 نوشتند. موبیت کورش نیکنام در هفتمین دوره مجلس ایران نمایندگی ها، نماینده هازمان زرتشتیان در خانه ملت را بر عهده داشتند و همکنون سرپرست کانون دینی مرکز فرهنگی زرتشتیان در پاریس، و دبیر انجمن جهانی زرتورشدیان در فرانسه میباشند. و اما برنامه نشست امروز ما که موبد بزرگوار در مورد اون سخن خواهند گفت پیرامون وندیداد هست که میدونیم بسیار بحث هست. با جان و دل چشم به راه هستیم که سخنان ارزشمند استاد بزرگوار موبد دکتر کوروش نیکنام رو بشنویم سپاسگزارم موبد بلندگو باشم. شما خواهش میکنم من منم سپاسگزارم از اینکه به هر حال فرصتی پیش اومد که با شما و دوستان بزرگوار پژوهشگران عزیز در گنجینه دانش دانشگاه سپنتا سخنی داشته باشم من چند موضوع رو پیشنهاد داده بودم که در خدمت دوستان باشم منتها خوب این جایگاه وندیداد در ادبیات عوستا گزینش شد که من روی اون صحبت بکنم پیش از این که من بپردازم به خود وندیداد اگر صلاح میدونید من اصلا بگم این اوستا خودش چی بود و وندیداد کجای آن اوستا هست و خود به خود می رسیم به خود وندیداد و در وندیداد هم یک کنکاشی خواهیم کرد نسبت به زمانی که در اختیار ماست چون خود وندیداد من فکر می کنم سه یا چهار جلسه نیاز هست که هر کدام از این بخش رو بررسی بکنیم و ویژگی اون پیامی که درون هر بخش هست بررسی بشه خود اوستا رو دوستان همه میدونید که واجه اوستا یعنی این دانش که به صورت وست، وستا، اپستا، اپستاگ هم اومده بعضی جاها و این اوستا به هر حال گنجینه است که امروز در اختیار ماست. گروهی میپندارند که اوستا کتاب دینی زرتشتیان هست در حالی که این نیست. اوستا مجموعه ای از دانش گوناگون اسطوره، باور نیاکان ما و مجموعه ای که در طول تاریخ این سرزمین گردآوری شده و چون به خط اوستا یا دین دبیره هست خب این رو گنجین ابستا میکنیم. خب دین دبیره اصولا خب واجه دین که معلومه یعنی دعینه نه که شش به ششاره میکنه نخست این بار و اون میروی تشخیص خوب از بد هست، وجدان آگاه و وجدان بیدار هست. دبیره کجا بود؟ ما در قوستا پوست میگیم دپ و این دپ همونی که دف می نوازند، اون ابزاری که باش نوازندگی میکنن، دف تبدیل شد پوست پیش از این که کاغذ اختراب بشه ابزاری برای نوشتن بوده و ایرانیان باستان متنها رو بر پوست با آب زر می نوشتن به ویژه جایی که این پوست بر آن نوشته می دپستان بود و بالاتر از اون دپیرستان که باز په به به تبدیل شده و ما همچنان نام دبستان و دبیرستان رو داریم به هر روی این دین دبیره یعنی خط دینی یعنی نوشته ای که دین رو باید با آن نگارش کردن آنچه که ما در روایت ها داریم اینه که عشو زرتوش پیام خودش رو هنگامی که به مردم آن زمان میگفت گشتاسب که گشتاسب کیانیک هم دوره اون بود و بعد پذیرفت که گفتگوی با دانایان داشته باشه عشو زرتوش پس از آن اینجوری که میگم بعد تعداد زیادی بعضی روایت ها میگه دوازده هزار پوست گاو این متن عوستا نوشته شد و در گنج شاهی نگهداری میشد بعدها خب زرتوش دیگه اون داستان بلخش رو دیگه شنیدیم و درگذشتش رو شنیدیم و اونها دیگه چیزی نیست که دا عنوان جستار ما باشد دارا یا داروش سوم همه این عوستا رو در دو نسخه نگهداری کرد یکی در خزانه شاهی یکی هم در دجه نوشت که حمله اسکندر پیش اومد و رومیان به ایران حمله کردند. یکی از این منابع رو سوزوندن و گنجینه دومی که در دجه نوشت بود با خودشون رومیان به یونان بردن و به یونانی ترجمه شد و خیلی ها می که بسیاری از نکات فلسفی بر برگرفته از است که در هوستای کوهن وجود داشت. بعدها در زمان اشکانی بلاش اشکانی از نواهی گوناگون آنچه که پراکنده در دست موبدان بود و خونده بودن عوستا رو کرد و رسید تا زمان ساسانی که زمان ساسانی عردشیر بابکان با کمک و راهنمایی تنسر یک موبد مزرگی آن زمان بود باز آنچه چی که جمعوری شده بود رو در واقع نگهداری کردن و اون معتبرهاش رو اون چیزایی که ارزش داشت نگهداری کردن و بقیه رو کنار گذاشتن. خب این نسخه آنچنان که در واقع گزارشی ما داریم در دین کرد فصل هشتامش میگه که در سه بخش گاهانی و هادک و دادیک وجود داشته که گاهانیش شمو سرودهای زرتوش بوده و هادت منستریکیش که مربوط به نیایش ها بوده و دادی کش که از داد و قانون سخن میگه و در مورد نهادهایی بوده که اون زمان بر سر کار خب ما روبرو میشیم پایان زمان ساسانی به حمله اعراب به ایران و اینکه با کتاب های زیادی میشن عرب و خب دستوری که از اون برمیگیدن اینه که هرچی به زبان عربی هست خب بمونه و بقیه اگر که نوشته های معتبریست که بالاتر از اون برای ما آمده و گرنه بقیه رو به آب بریزید یا بسوزونید که خیلی ها و این است که در تاریخ تبری و دیگر نوشته های همان زمان اومده یک سوم تقریبا اون اوستا پس از یورش تازیان به ایران تقریبا باقی موند که ما اکنون در دست داریم خب طبیعتا اون زمان سه قوم بودند که در زمان زرتشت در ایران رو ایران فعلی رو و ایرانی که سرزمین زمان زرتشت بود که چندین برابر این بود با گویش های مختلفی دوناگونی سخن می‌گفتن یه قوم مادها بودند که اونها اصلا پیشرفته تر بودند و مغان داشتند و کسانی داشتند که پیشوایان دینی بودند همون زمان که زرتوش در بین اونها متولد شد اینا در قرب ایران در باختر زندگی می کردن. در خاور و قسمت خاوری ایران گروهی که زندگی می اینها زبانشون فرق میکرد با دیگر جاها و گروه دیگه ای که در جنوب ایران داشتیم، اینا پارسی بودند و زبان پارسی رو گویش می‌کردند. آنچه که امروز دانشمندان بهش دارند اینه که زبانی که عبستا باش سروده شده و نوشته شده زبانی است که مربوط به خاور ایران هست. خراسان بزرگ، از خارزب تا سیستان، مناطقی که زمان زرتشت این سخن رو به این شکل ادا میکرد. ما امروز آنچه که در دسترس داریم یک سوم اوستایی است که از زمان ساسانی باقی مونده حالا بعضیا میگن یک چهارم اون اوستای موجود بقیه را خبر نداریم ما چه بوده یه ای که اینجا صورت گرفته اون کتاب دینی زرتشتیان که گاهان یا گاتا هاست همچنان پایدار در لابلای بخش های دیگه ما یعنی اسنا باقیه اون چه که ما امروز داریم در واقع به نام اوستا و اون رو میشناسیمش شامل پنج بخش است: یستا، یشتا، ویسپرد و اندیداد که ما امروز روش صحبت میکنیم و خورد عوستا که همه به زبان همون دبیره عوستایی نوشته شده. خب یستا مهمترین بخش اون هست که هفتاد و دو داره و از حات یک تا هفتاد و دو، هیفته حات آن از بیست هشت شروع میشه و تا پنجا و سه ادامه داره این سخنان زرتشت است. به جز بخش های وسط اون مثلا هات چهل و دو و پنجا و دو رو که این لابلا هست سخنان زرتشت نیست چهل دو در مورد هوم، شیر، آب و گیاه صحبت میکنه و پنجا و دو نیز در ستایش ایزده هی زده دارایی و توانگری باز در میان آن ما یک بخشی داریم هفتهات نامیده میشه یا هفتن یشت از سی و پنج تا چهل اونم ادبیاتش بسیار همانند گاهان زرتشت است و بیگمان شاگردان زمان زرتشت یا پس از او سرودند و در وسط این قرار دادن به هر حال این یسنای 72 هات، آغازش به هر حال چیز دیگه ایست، پایانش هم چیز دیگه ایست، هات 28 28 شروع میشه گاتای ما و 27 نیست، در واقع سه سرود ویجه و ارزشمند دیگه ای عوستا در اون نهفته از عشم و هو، یتا و ینک هاتام که هر سه سرود بسیار ورجاوند است. و حات 54 چهار نیز عید امن ایشو هست که باز یک سرود نیایشی که در یستنا است. این یسنا الان تمامش رو موبدان پیش از این باید از بر داشته بودند و با خط خودشون مینوشتند نوشتند برای که دوره موبدیشون تکمیل میشد و نزد بومدان بزرگ امتحان می یه زمانی. امروز می یسنا مجموع هفتاد و در برنامههایی مانند واجیشت گهنبار که در هر شهری گهنبار آغاز میشه مودان با خوندن یسنا و کوبیدن ساقاهای هوم در هاون این رو تهیه میکنند آب هوم پرا هوم رو و آبش اضافه اضافه میکنند و می نوشند کسانی که باشنده هستند و این یسنا رو میخورن این مجموع یسنا یشت ها بخش دیگه است که آن هم بسیاری از باورها و اسطوره های کوهن ایرانی گاهی پیش از زرتشت هست که بهش میگیم یشت های کوهن مثل فروردین یشت که طولانی‌ترین ترین است که الان موجود هست یا مثل مهر که اون بعد از فروردین یشت یشت طولانیست خرداد یشت بخش هایی داریم که جوانتر هستند مثل ارمز یشت مثل عردی یشت اینها در خود خرده عوستای امروزی هم اومده یشت ها طولانی هن، کتاه هن، بعضی ها نصر مسجن به صورت شعر حتی گاهی اومدن ولی هیچ کدومشون هموزن با پیام زرتشت و گواته های زرتشت و سروده های او نیستند. یشت ها در واقع بیست و یک یشت ما اکنون در اختیار داریم که هر کدومش مربوط به یک موضوعی است. نسخه بعدی اوستاد ویسپرد هست. ویسپرد ویس یعنی همه و ویسپرد رد یعنی پیشوای دینی. یعنی تمام ردان و موبدان اون زمان برای برگزاری آینهای سنتی مانند گاهنبارها اینها مجبور بودند که این سرودها را و چبونگی برگزاری یزشن را بدونن این مجموعه در برگرفته از یسناس بیشتر و در دل کتابی به نام 20ت جای که ۴ بخش در واقع در 20 داری دارید. خرد باز کوتاه شده بخش های اوستاست یعنی در زمان ساسانیان موبدی به نام موبد ماراسپند بر آن شد تا این اوسته ها چون طول میکشید خوندنش اون رو کوتاه کنه و بخشهایی نیز به آن اضافه کنه. آزمایش ور انجام داد آزمایش ور آزمایشی بود که اون زمان یا از آتش میگذشتن همانند سیابوش که ما نمونهش رو داریم از آتش گذشت یا اینکه روی داغ فلز روی رو، زوب می کردن داغ میکردند، بر سینه افرادی میریختند که حقانیت و درستی آنها بشه. این رو از در ور رو انجام دادند برای موبت و ایشون گردآوری کرد و کوتاه کرد مثلا مهریشت به آن طولانی که اگر بخوایم امروز بخونیم دو ساعت سرایش مهریشت طول خواهد کشید این رو تبدیل کرد به مهر نیاگشت و اکنون ما در خورده اوستا داریم. فروردین یشت به همین شرک آمده کوتاهش در خرد اوستا اردی بهش یشت اومده و رهرام یشت رو گزینش کردن حالا بعضی یشت ها هم زمان شاید به دلیل باور همان موید ماراسپند بوده که باید اینجا گزینش شده و داخل خورده اوستا می اومده اما چنان رهرام یشت این رهرانی یعنی پیروزی اون که در پارسی به بهرام تبدیل شد ایزد پیروزی است و بیشتر ایرانیان اون زمان نیاکان ما برای اینکه در زندگی پیروز بشند رهرام رو میخوندن و از خونه بیرون میرفتن. خب این پنج نیایش هم در اون گنجونده شده. نیایش آتش، نیایش آب که آب زور هم گفته میشه زور در واقع خوراکی است که به آب یا آتش داده میشه چون ایرانیان باسان چهار عنصر رو گرامی می داشتند آب و خاک و هوا و آتش و به همه این چهار عنصر که پاک کننده بودند خوراک میدادند و آنها را آلوده نمی کردند چوب خوشبو بر آتش می گذاشتن. خوراکی بود برای آتش به آب شیر اضافه میکردم در آینهای های شیری که برگ گل سرخ و برگ خشکه آویشند در اون ریخته بودند و این رو به آب میدادند و باورشون این بود که این آب باید بالنده باشه. هر بی سور انعیی تا خوشنود می با این خوراکی که به آب میدادند. همچنان به هوا میپاشیدند ایتر یا گلاب میریختند که امروز هم, هم ما داریم. هنوز توی ایران بعضی از این سنت ها پایار مونده به عزاداری امام حسین اگر شما ببینید گلاب میپاشند به مردم. یعنی هوا را خوشبو میکنن خاک نیز همین خاک باید خوراک داشته باشه اون رو رو میکردن و دانه ها در اون تا این خاک این زمین زاینده و بالنده بمونه و هر روی پنج نیایشی که در اونجا هست نیایش آب آتش خورشید ماه و مهر هست خورشید نیایش و مهر نیایش دنباله هم هست که در آین ها خونده میشه این دوتا پشتره هم خونده میشه مهر نیایش که نهریشت سابق هست در ویژگی مهر سروده شده نور خورشید، ایزده پیمان و می، میتره در واقع که بعد به میترهیست دبیر شد به اروپا اومد و سرود بسیار هماسی است، میتراه و اروگه و, یا و از انگرم گاوشه بای برم، از اختو انا چشمانم، سرود بسیار دلنشین است از سرادش. به ما این مجموعه اوستا بود که یک گزارشی در برش دادیم و هر کدومش که جای خودش رو خواهد داشت. میمونه به وندیداد. وندیداد که خود واجه اصلا هست وی دعه و داته. وی یعنی بدونه یعنی هنوز ما وی رو در روییشه زرتشتیان داریم که میگیم مثلا وی دونه یعنی بدون دانه وی کتاب یعنی بدون کتاب کلمه وی رو ما هنید داریم دعو و یا دیو این دیو ها در اقوام اولیه‌ای که از آریا ها مهاجرت کردند و به ایران آمدند و بعد دو شاخه شدند گروهی موندند گروهی به اروپا و گروهی به هند کوچ کردند باور مردم اون زمان هنوز به شکل سنویت بود یعنی اونها هم مزدار را ستایش می کردند بودند و هم دعه و یسنه یا دیو بودند دیو چی هست؟ پدیده ها و انگیزه های ناشناخته مردمان اون زمان به صورت اسطوره باورشون این بود که بسیاری از پدیده ها بر زندگی آنان بدی رو خلق میکنه آفتی میمد کشاورزی رو از بین برد. یا سیلاب میمد خانه هاشون ویران میکرد رد و برق میشد بر زمینشون آتش ایجاد میکرد زرزله می شد نمیفهمیدن دلیلشون رو و مهمتر از همه که چون بهداشت به شکل امروزی نبود اینها بیمار میشدن یک بار می دیدن در روستا یه نفر مریض میشه و میمیره پشت سرش چند روز بعد مرتب چند نفر میمردن نه میکروب شناخته شده بود چون میکروب 200 سال شناخته شده نه اینکه کسی بود که پزشکی که بدون این دلیلش چی هست دست به دامن کاهنان میشدن پیشوایان دینی میشدن و اینها باورشون این, این بود که ما مظاهر و نمادهایی داریم خشمگین که به نام دعوه ها و اینها را باید خوشنود بکنیم یا باید کاری بکنیم که ما اینها از زندگیمون دفع بشن وی دعوه دا دات تعداد همون داد گستری دادگاه دا دا دا دا قانون پس شد قانون ضد دیو یعنی ما چه بکنیم که اون چیزهای ای که در زندگی ما هست اونها را بتونیم از بین دبریم وندیداد باور پیش از زرتوشت شروع میشه یعنی با زندگی مردم آغاز میشه در محله های مختلف، در شهر های مختلف هر کسی میاد یک ابتکاری انجام میده یک سخنی میگه و مقان ماد این رو بیشتر در واقع به کار میبردن خب طبیعتاً یک دکانی براشون بود برای که بتونن با کارهای شگفتانگیز جادوگری یا هر دیگه ای در واقع مبارزه بکنند با دیوان و کاری بکنند که این دعوه دیگه آسیب به زندگیشون پرویز رجوی یکی از پجوشگران ایران میگه در من در کتاب هزاره های گمشده خودش مینویسه که من تعجب میکنم که اصلا در زمان عشقانی و ساسانی چگونه این کتاب که هیچ باورش نوشتش به گاتاها و پیام زرتش نمیخوره اصلا جزبه عوستا آوردن یعنی اصلا حقش نبود که این رو بیارن جزبه عوستا و سلوکا باز نیبرگ خواهرشناس باور باورداره که مغان در واقع این نوشته را تنظیم کردند و پس از اینکه که کار عشوزرتوش تمام شد متوجه شدن که عشوزرتوش طرفداران زیادی برای خودش برجا گذاشته اون چرا که می‌خواستند به نام همون دیوه و وندیداد به خورده مردم بدن به شکل دیگه ای در واقع به نام زرتوشت در آوردن و به مردم بدن. اون چیزی که امروز به نام وندیداد در اختیار ماست پاراگراف پاراگرافش نوشته شده پرست را اهور مزدام یعنی پرسید زرتوشت از احور و بعد پاراگراف بعدی که پاسخ این هست اهورامزدا جواب میده یعنی ما در هیچ جای سرودهای اوستا و حتی بقیه بخشهای اوستا ما گاته های زرتوش هیچگاه به چنین پرسش و پاسخی بر نمیخوریم که زرتوش مستقیما پرسی صد زرتوش به اهورامزدا یعنی پرسش زرتوش از مزدا و بعد اهورامزدا آسخش رو بایده باشه این تو چیزی نداریم این معلوم میشه که همون سخن نیبرک شاید درست باشه که مغان اومدن و این رو به نام زرتوش تمام کردن برای که بهتر بتونن از این ابزار استفاده بکنن در بین مردم بعدها که خود به خود این وندیداد ما سرگذشت کل عوستار رو داریم که تیل دوپران حدود 300 سال پیش این مراجع کرد به پارسییان اوستایی که بعد از به هر حال گنجینه عوستا پس از اون توسط موبدان و با حمله ای که عرب به هر شکلی در هر شهر روستای ما داشتن اینها این کتاب در واقع ورجد و سپند خودشون رو بر میاشتند از این شهر به اون شهر کوچ میکردند که از آسیب نگه دارند و بخشی از اون رو هم نوشته ها رو پارسیان از ایران به هندوستان برده بودند. از اون زمان آغاز شد که ببینیم اینها چی هست متنش. خب موبه اون زمان پس از ساسانیان دیگه آرمارام این معنای اینها را رو کمتر به کار می و فقط این رو می سرودن و به کار می بردن بعضی از اون ویژگی هایی رو که هنوز سینه به سینه منتقل شده بود در این مجموعه وندیداد براشون مونده بود از جمله اینکه جسد در را با فرهنگی که از کوچنده های شمال کشور اومده بود شمال ایران آمده بود بالای آر... چیز دریاچه آرال و پایین. اینها خب چون نمیتونستن پوشیده از برف بود اونجا گزارشی که ما داریم ده ماه سر بوده زمستان و دو ماه فقط تابستان در خود وندی اشاره میکنه بعد خب اینها توان این که بتونن جسد در خودشون رو به خاک بسپارن نبوده زیر برف بنابراین اون در بالای بلندی قرار میدادن تا خوراک پرندگان بشه و یه کار بدی هم نبوده به نظر من اون زمان زیباترین چیزی که در واقع اتفاق می این که زمین زیادی رو زیر پوشش مرده ها بردن مثل امروز و دومین که کسی که بر مزار در هم میرفت برای شخص خاصی نمی رفت اونجا به یاد پدر یا مادر و به یاد همه همواروانان و فرور درگذشتگان می رفت. و دیگر اینکه چه زیباست که انسان پس از درگذشت پدر یا مادر یا یکی از بستگانش جسد او رو برای که تنازع بقا همچنان ادامه داشته باشه این رو خوراک کرکسها یا خوراک پرندگان لاشخور می که اونها هم باشن در طبیعت و خیلی زود این رو از بین می رفت و جالبه که یک مقاله می خوندم که آب دهان کرکس ثابت شده که تمام میکروب های بیماری انسانی رو نابود می کرده و از بین می برده همون کاری که ویده و داته در واقع داریم توی کتاب وندی دارین این, این میکروها ها رو از بین می برده و روی اون زمان چون خیلی چیزها ناشناخته بوده آن چی رو که از بدن انسان یا بدن حیوان خارج می شده بهش می گفتفتن نساح یا نسو و بعد میش گفتفتن دیو نسو یکی از دیوهایی که خیلی تاثیرگذار گذار در زندگی مردم بوده. اینها میدیدند که از بدن انسان وقتی یه چیزی خارج خواهد شد، مثل مدفوع، مثل ادرار مثل خون، مثل ناخن دست مثل موی سر اینا از بدن خارج می شده همه اینا را اهریمنی میدونستند و باورشون این بود که اینا تولید یک دیوی خواهد کرد حالا موقع میکروب رو نمی‌شناخت تولید دیوی خواهد کرد که این دیو زیان آور هست برای زندگیشون بنابراین اینها توسط،, توسط این چیزایی که در واقع از زندگیشون دار می می‌شد به نام نسا یا پلیدی اینها را با یک آداب خاصی و با یک فرهنگ خاصی این موقعن دستور داده بودند به همه که این رو باید بیرون از شهر ببرید. زنی رو که دشتان میشد زنی رو که خب عادت ماهانه را داشت به دلیلی که خون ازش پیدا میشد این بسیار کار ناشایستی می و این معلوم نیست چه بر روزگارش خواهد آمد بنابراین ترتیب داده بودند که این زن هفت روز مربوطه به خودش رو در یک جای استراحت بکنه البته کار خوبی هم بود به دلیل که اون زمان زنان در کار کشاورزی در دامپروری در کمک به مردها و کنار خانواده زحمت می‌کشیدند خب این پن... این هفت روز نیاز بود که استراحت بکنه ولی خب بعضی از چیزهاشون که حالا یک مرد اشو نباید کنارشون میرفت مدی که نماز میخونه نباید کنارشون آتش رو نباید کنار اینها میبردن چون خب طبیعتا در سرمای زمستان اینا سردشون میشد اینا کارو تو که دیگه موقعان پیشنهاد داده بودند و انجام میدادند جسد درگذشتگان رو خب قوانه مادریم توی قانون که توی وندیداد که با یک ویژگی خاصی بودن اون رو می بردن بیرون مثلا هیچ کس نباید به تنهایی جسد درگزشته ای رو بیرون میبرده از محیط زیست و اون رو می بالای بلندی ها طبیعتا لابد اون زمان از امنیتی ممکن بود یکی دیگری رو از بین ببره و بعد ببردش بیرون شهر برگرده و بگه این فالانی مرد من بردمش دخم گذاشتمشون بده خب شاید به همین دلیل بوده که گفتن حداقل دو نفر باشن که این رو بیرون ببرند. در هر و به هر روی ما وندیداد رو امروز در اختیار داریم پیام زرتوشت نیست و خیلی از مفاهیم و گفته هاش هستن بیرون از اندیشه اشوزر تشت هست ولی یک منبع بسیار پجوهشی معتبر هست که ما بدونیم هفت سال پنج هزار سال پیشتر نیاکان ما چگونه می و قسمت های مختلفش که الان من اشاره میکنم نمیدونم وقت به امید خدا هست دوستان بفرمایند بله ما با بفرمایید بله این بخش ها من اشاره میکنم در وندیداد که اشاره خیلی کتیب ببینیم کوچک که این 22 در واقع بخشی که در وندیداد اومده اصلا به چه چیزهایی اشاره می‌کنه و خیلی جالب هست بعضی هاش واقعا ارزشمند هست ما در فصل یک وندیداد مربوط هست به مهاجرت آریا ها آریا ها از ایران ویج 16 شهر رو تیم میکنند و به جنوب و به قسمت ایرانی کنونی میرسن و ایران شرقی قسمتهای بلخ و قسمتی که در افغانستان هست نام هایی که اشاره میکنه بسیار ارزش داره که دوستانی روش پجوهش بکنن هرچند دانشمندان و باستانشناسان شوروی سابق بسیاری روی اون کار کردن روسیه داره کار میکنه اشاره میکنه وندیداد که نخستین کشور ایرین و ایجهیست همون که امروز ما بر ایران داریم و هر کشوری که اهورامزدا اون رو پدیدار میکنه جالبه که اهریمن چون عرض کردم باور مردمان اون زمان این بود که هم خدای خوب داریم که اهورامزداست سازنده و نیک در کنارش نیروهای اهریمنی داریم که تلاش میکنند کاری رو که او را انجام داد یا پدیدار کرد یا سازنده بود اون رو زیر سوال ببرد و در کنارش یک چیزی رو خراب کند و خراب بکنند در عنوان مثال ایرینا و جهی یاد شده در وندیداد که دارای رود وانو هیداییتیست یک رود بزرگی که سرشاره سرسبزی و تراوت هست ولی اهریمن میاد و مار آبی و زمستان دیو رو که زمستان بزرگ هست برای این سرزمین خراب خب این ایرین و ای جهی پس با این شکل که ده ماه زمستان و فقط دو ماه تابستان داشته میتونه همون بالای دریاچه کاسپیان یا خزر امروزی باشه که اون بالا بالا به هر حال سرد بوده و ایرین و ای جهی نامیده میشده و مردمان که باور به وندیداد داشتن اونجا زندگی میکرد دوم سخت هست، سخت رو اولا مذا با دشت سرسبز آفرید ولی احریمن ملخ رو برای این سرزمین آفرید که بتونه کشتارش رو از بین ببره مرو توانا و خوشقلب مردمانی داشته اونجوری که اشاره وندیدات هست ولی آفت و رفتار خلاف ادب رو برای مردمانش درست میکنه احریمن بلخ شهر بعدی است که زیبا با پرچم برافراشته یاد میکنه وندیداد و جالبه که بدونید این پرچم برافراشته شاید تا به امروز هنوز ما داریم در کابل این کار رو میکنن و به هنگام نوروز پرچمی رو ویجه نوروز برافراشته میکنن و با چوب و یک پارچه بسیار بلندی و شادی نوروزیشون در کنار این پرچم برافراشته است و هر روی بلخ احریمند براش مورچه و سوراخ مورچه در واقع حدیدار میکنه در این نوشته وندیدار شهر پنجم نسایه بوده که مهاجرت میکنند و میان شهر نسایه رو بین مرو و بلخ میدونن و احریمند برای این شهر شک و تردید به یادگار میذاره شهر بعدی هرات هست که خانه های نامسکونی داشته و آخریمن براش اشک چشم و سوگواری رو به یادگار میذاره. کابل شهر بدی است که شهری وابسته به گرشا هست و سایه های نامطلوب داشته ولی پریان در واقع آخریمن براش وجود میاره. اوروا شهر هشتم هست که دارای چراگاه های سرشاری بوده ولی آفت نخوت و غرور رو احریمن براش به وجود میره شهر گرگان شهر بعدی است که در شهر سرسبز و خوبی آفریده میشه احریمن گناه بی توبه رو آلا معلوم نیست چه گناهی برای اون درست میکنه شهر بعدی رخچ هست که شهری زیباست آفریده شده یهورا یه ولی احریمن آفت دفع مردگان رو به اونجا در واقع هدیه میکنه حتمند یا هلمند شهر یازده هست در وندیداد گزارش شده که شهری درخشان و فیروزمند هست ولی اهریمند جادوگری رو به این شهر هدیه میکنه. دوازده شهر رگه هست که ری هم گفته میشه و سه نجات در اون پدیدار میکنه، سه نجات خیلی برتر و خوب، اهورا ولی آفت بیعتمادی رو احریمند بیادگار میذاره. سیزدهمیش چخره هست شهریست که چراغ توانا داره ولی گناه بیتوب باز بین به بهره این شهر میکنه اهریند و چهاردهمیش ره نه یعنی چهارگونه چهارگوشه و گیلان کنونی رو نسبت میدن به این بخش به این قسمت ور نه که فریدون در آن زاده شده یعنی یادیبار هریما اینه که آفت بیقاعدگی و غیرعادی زنانه و حمله بیگانگان را نسبت دادن به این بخش بخشی که اینوز بنامه گیلان هست ولی اون که او را را میکنه زاده شدن فریدون هست که به جنگ زهاک میره در این کتاب هبته هندو هست که پنجاب هند هست اکنون و بخشی از شبی جزیل هند هست اینجا گرمای شدید و بیقایدگی غیر عادی زنان رو وندیداد یا اهریمن به این قسمت در واقع نسبت داده که هست و 16 بخشی که مهاجرت آریا صورت میگیره رنگاست که سرمایه دیوافریده نیز به این بخش داده شد خب ببینید این بخش نخست وندیداد بسیار با ارزش است. باید دوستان برن و پجوهش بکنن هر کدومش در کجا هست چرا این آفت‌ها رو اخیراً به اونجا نسبت داده آیا واقعیت داشته یا نه و به هر حال اون چیزی که در وندیداد اومده و ارزش داره نمیتونیم ما ردش بکنیم دومین بخش وندیداد مربوط به دوران پادشاهی جمشید پیشدادی میدونید که خب جمشید هم در شاهنامه گزارشش اومده و هم در گاهان زرتوش و سروده های زرتوش ما بخشی رو داریم به نام ایشون که جمشید پسر ویونگهان بر در واقع نفرین شده به دلیل اینکه گوشت خوردن رو به مردم آموزش داد جمشید در شاهنامه داستانش طولانی است که خب حتما میدونن دوستان در حال ذکر میکنه یما یا جمشید رو در وندیداد که کاخی ساخت در یک قار که کوچه های فراون داشت در یا چه فراون داشت و برگزیده از حیوانات و انسان رو در اون جای داد همانند کاری که ما گزارششو در کشتی نوح داریم این هم یه گزارشی در وندیداد که شاید نخستین بار اینجا اومده و بعد متون عربی از این برداشت کردن دورده میدونیم به هر روی فصل سوم از بهترین و بدترین جای زمین سخن رفته وندیداد مکانی رو برگزیده که اینجا جاهای خوبه و مکانی جاهای بد اشاره میکنه مثلا زمینی رو خوب میدونه که در آن مرد پارسا هاون در دست هاون یه وسیلیه است که هنوزم هست، مبدان در واجیش دیگه هموار ساقه های خون رو در آن نرم می کنند در آب. برسم در دست، برسم شاخه های گیاهی است که ناشناخته است ولی گیاه انار بود، شاخه انار رو 33 عدد بر می داشتند و می پیچیدند و برای خوراک آتش استفاده می کردند. شیر گاو در دست، همون شیری که با هم مخلوط میشه. و در آن به آواز بلند ایزد مهر دارنده دشت های فراخ را برابر آین آین دینی ستاش میکردند این اینکه یک واجهه که در وندیداد بیاد و یه چیز پی میبریم و که ایزد مهر رو ستاش میکردن اونا هنوز مهراین بودند هنوز مهر رو میپرسیدند و به هر روی در وندیداد چنین چیزی اومده ما نامی از زرتشت اینجا نداریم که مثلا صود های چی میثن بقید پاراگراف ها را داریم که پرسد زرت و اشتر مزدام آغاز هر کنیم شده است. زمین دومه برگزیده این است که مرد پارسا در آن خانه بسازد و پیشوای دینی با فرزند و رمه اولوفه و سگ و زن و فرزند و آتش در این زمین باشه. این زمین برگزیده است. زمین سوم باز مرد پارسا در آن هرچه بیشتر گندام، علوفه درختان میوه و آبیاری در زمین فراهم بکنه. چهارم رمه ریز و تربیت و پرورش داده بشه و زمین پنجام باز رمه و زیر ریز و باشه که کود بیشتری رو در واقع تولید بکنه خب این زمین های برگزیده ایست که وندیداد اشاره میکنه اون بالا که ما اشاره کردیم که خب نیایشگاه بود لابد طبقاتی بوده که این زمین ها را در خود روستا ایجاد میکردن خانه و زندگیشون بوده نیایشگاه مهر اونجا بوده مهرابه ها بوده و بعد میرفتن سراغ کشتارهایی که گندم و رحمه و بعد دورتر از اون جایی که خب آقال های گوسفند بوده برای تولید کود یعنی یک شرایط زمانی اون بوده که ما توی هازمان اون زمان سراغ بشتیم یا سراغ میکنه همون جا اشاره میکنه به زمین های بد که سرزمین بد کجاست و وندیداد از زرتشت از خداوند میپرسه و هر بار خداوند دونه دونه جواب میده و جالبه که این وندیدات حالا اگه در فرصتی شد بررسی کنیم ما کامل متوجه میشید که اصلا این اورامزا اونجا نشسته بر تخت و روبروش مثل مصاحبه هایی که امروز با یک کسی انجام میدن نشسته اون روبرو و زرتشت همین که سوال میکنه جوابش پشت سر هم داده میشه خب کدام زمین رو میگه میگه زمینی که اندو، زمین نخست که بدتر از همه هست زمینی که اندوه و غم بیشتر درون باشه و این زمین رو تشبیح میکنه به دهانه کوه وره یعنی دماوند و در اونجا میگم که دیو ازش بیرون میمده خب شاید هفتزار سال پیش یا پهزار سال پیش مایی که دوستانمون داره پدرش میکنه این اجده هایی که در شاهنامه هم بهش اشاره شده خب گدازه های آتش فشانی بوده که از دماوند بیرون می اومده و توی دشت به صورت یک ماری که از دهانش بخار بیرون می اومده و گرماش آنچنان چنان بوده که همه چیز اطراف و پیرامون خودش رو می‌سوزونه و جلو می اومده این شاید به ها تبدیل شده نمیشناختم دیگه این دیو همون بوده شاید توی وندودان به این شکل داره اشاره میکنه که از دهانه کوه دماوند یک, یک دیوهای بیرون میاد که موجب آسیب به مردمان میشن این خب یک تاریخ و جغرافیا دوامین سرزمین بعد است که جسد مرده یا لاشه سگ در آن دفن شده باشه این چیز خیلی است که ما می‌بینیم اینجاست که سگ در کنار انسان چقدر اهمیت داشته اون موقع که در برک های در فصل های بهش به اشاره میکنیم که انواع گوناگون سد مادر سگ در وندیداد اشاره شده جای سبمی که وندیداد اشاره میکنه بعد هست جایی که دخمه و قبر برای دفن مردگان در آنجا بیشتر باشه جای چهارم جاییست که سراخ های بیشمار احریمن در آن پدید آمده باشه حالا این رو لابد به موجودات موزی مثل مگس یا زنبور یا مورچه یا هر چیز دیگه که بعدها به نام خرفستران ازشون به یاد می شاید منظورشون اونها بوده سوراخی که اهریمن درش بیرون می و بعدتر جا بعد جاسرزمینیه که زن و فرزند مرد پارسا در آنجا راه خود را گم کرده و به اثارت درآیند این بدترین زمین یا سرزمینیست که وجود داشت. بخش بعدی فصل چهارم وندیداس هست که از انواع عهد و پیمان و گناه و عهد شکنی و پاداش عمل و ضرب و شتم و اینکه چگونه تازیانه میزدند صحبت میکنه. خب در این بخش در شش گونه اهد و پیمان رو اهورابازده به زرطشت میگه یعنی اون که در وندیداد گزارش شده اهد و پیمان است با فشردن دست ارزش یه گوسفند نوعی بوده ارزش گاو ارزش انسان قطع زمین آباد و حاصل خیز هر کدوم اینها روش در واقع برای اهد و پیمان شرط میبستند یا کسی که اهد شکنی میکرد اون رو بر سینمی خوابوندن و بر پشت و بدن او تازیانه میزدند به تعداد گناهانی که انجام میداد یا نوع عهدشکنی که میکرد. اون واجه پشوتن رو ما امروز به کار میبریم پشت و تنشون رو با تازیانه میزدن این واجه تبدیل شده به پشت و تن یا پشوتن ساده ترش که به کار میبرن. این بخش چهارم بخش پنجم درباره انواع نجاست و دفن موقت مردگان به هنگام یخبندان و لمس نکردن مرده و رعایت پاکیزگی است که خیلی در واقع بهش شده اشاره میکردم برای مرده ها که نسا نامیده میشوند و اون چیزی که از بدن مرده بیرون میاد هیر نسا. اون چیزی که اول اشاره کردم نسا منظور خود لاشه مرده، لاشه انسان یا حیوانات دیگه و آنچه که از بدنشون بیرون میاد به نام هیرنسا اینا که هر دو پلید بود و تلاش میکردن هم نسا و هم هیرنسا را بیرون از زندگی ببرن چون اینا میدونستن که ازش دیو بیرون میاد و یک آداب خیلی ای برای اینها موقان ترتیب داده بود. فصل ششم اون باز چگونه پاک کردن زمین و آب آلوده و کسافات هست که بسیار پیچیده اینا باور داشتن که آب آب راکت تولید دیو میکنه دیور میکنه خب حتماً مو آب راکت میکروبزا بود میکروب تولید میکرد یا حشراتی چیزی درش رشد میکرد که خب حس میکردن نامششه رو نمیناختن دیو میذاشتن و جالبه که بدونید اون موقع اشاره که میکنه میکنه دریاچه ارومیه کنونی چیچاست؟ این دریاچه رو جایست که میکروب ها درش از بین میور میرفتند ولی دریاچه کاسپیان جایست که میکروبها درش رشد میکردن. خب طبیعتا اونجا چون نمک زیادی داشته و نمیدونستن لابد این بسیاری از این میکروب ها یا دیو ها به باور اونها، از بین می رفته در اونجا فصل هفتمی که ما در واقع اشاره میکنیم در وندیداد در پاک نگه داشتن لباس، قله هیزم، علف و است که با بدن مردگان سرکارده. خود طبیعیتا کسی که از بین می ابزاری در کنار زندگیش بود این لباسش رو به گونه باید تمیز میکردن از بین می بردن میکروب آش رو یا دیویش رو به باور اونها که بیشترین هم که استفاده میکردند و در اختیارشون بود اون زمان ما باید بریم سراغ نکته ها و فراورده های بهداشتی 5000 پنج سال سال یا 7000 سال پیش گاب را استفاده میکردن چون لابد آمونیاک داشت و بهترین شیوه ای بود که میتونستن میکروب ها رو یا آلودگی ها رو از بین ببرن به همین روی این گاب تا مدت ها پیش همچنان مونده بود و استفاده هم می کردن شاید بهترین نوع حاک کنندگی اون زمان بوده ما هنوز در ملت‌های مختلف هم داریم چون امروز این یکی از چیزهایی که خب در وندیلات به زرفتشتی نسبت می و ایراد می گیرند و تهمت می استفاده از شاشگاه هست که بهره می گرفتن خب ما هنوز یکی بزرگان عرب داریم که اشاره کرده ماهی یک بار شاش شطر نوشیدنش لازم هست نیاز هست و ایمان ایجاد میکنه خب ما باش تن میشستن نیاکان ما این چیزی نیست که زرتوش اشاره کرده باشه هر در وندیداد به نادرست هر پاراگرافی نام زرتشت رو میاره ولی نیاکان ما از این ماده که استفاده میکردن چیز دیگه ای نه صابون بود نه مادهی زرفویی بود ماده دستشویی بود چیزی نبود و شاید بهترین وسیله پاک کننده آن زمان این بوده و یکی از ماده هاش خاک بوده و یکی آب که به این سشور نیز میگفتند یعنی آدابی وجود داشت که ما نشبه یا سشور میگفتیم و اون رو پاک میکردن من نمیدونم من بخوام تا 22 اشاره بکنم دیگه جایی برای پرسش و پاسو خواهد بود عزیزان یا تمامش بکنم اینجا. سپاس موبد بزرگ دوستان اگر پرسشی دارید در بخش چت همگانی عدد یک رو بزنید موبد بزرگه در این زمانی که دوستان یک رو میزنن و میندیشن که چه پرسشی بکنن شما یکی دو مورد دیگر رو هم برای ما بگی چون خیلی دوست داریم که داشتن بله خواهش میکنم فصل هشتمش باز پاکیده کردن و ضدفونی کلبه خیمه و جایگاهی که انسان درش مرده است ما هنوز این این تا 50 سال پیش در یزد هنوز اراشتیان هم داشتن چون اینا وندیداد که ترجمه نشده بود بعضی از ویژگی هایی رو که بود اونجا انجام جایی که مرده رو میخوابوندن یک خشت و چراغی درش میگذاشتند و اونجا را یک ماده تمیز کننده به نام سیر و صداب میریختن که اونجا زدفونی بشه و نمیدونست این آی است که از اون زمان باقی مونده فصل نهمش به برشنوم یا نشوه اشاره میکنه یک آینی زماند قرنطینه ای که میدیدم یکی از شهر دیگه ای که بیاد توی منطقه ای ایران اون زمان مغان حس می که این ممکنه یک دیوی رو با خودش آورده باشه خب همون میکروب هاییست که امروز هم ما بهش باورمندیم اینها را در قرنطینه نگه می داشتن. نه شبانه روز خوراک مخصوص به اینا می و توسط همون سه ماده پاک کننده که اشاره کردیم خاک و آب و شاش گاو که بهش پجب هم می گفتن. اینها را می شستن و بعد از این که تمیز می شدند و یقین پیدا میکردن که اینها دیگه آلودگی ندارند وارد شهرشون میکردن. فصل دهم به نیایش ها و دعاهایی اشاره میکنه که شخصی که قصل میگیره در اون هنگامی که برای نشبه میرفت چه دعاهایی باید خونده میشه. فصل 11 همش چگونگی باز پاک کردن آب و زمین و درخت هست که آلوده شده. فصل دوازده زمان گرامیداشت داشته روان در گذشتگان هست که تا چه مدت اگر پدر میبرد تا چند روز باید سوباره میکرد خواهر و برادر تا چند روز همسایه چند روز پسر عمها چند روز که هر کدوم تعدادش روزهای سوگارش کمتر گزارش داده شده در داد پس سیدهم به انواع سگ اشاره می‌کنه و جالبه که ما چندین نو سگ داشتیم که بالاترینش سگ گله هست بعد سگ مستاد سگ های مختلفی به سگ آبی هم اشاره میکنه و حتی سگ آبی کشتنش مجازات داشته یا اینکه اگر کسی سگ آبی رو میکشت باید تعداد زیادی وزق یا حیوانات دیگه هم رو از بین می برد خب لاباد این سگ آبی در آن زمان کنار برکه ها و رودخانه ها زندگی میکرده و نمیذاشته تعداد زاد و ولد قورباغه ها یا وزغ ها زیاد بشه بنابراین کسی که سگ آبی رو از بین می برد مجازاتش تازیانه بود که میخورد یا باید در کنارش بقییم رو دوزیستان رو از بین می برد. فصل چهاردهمش درباره همون کشتن سگ آبیس و کفارهی که باید بده فصل 15 گناه بزرگ و کبیره که چی هست و توبه کردن به چگونه هست ضین که من اشاره میکنم در بینش زارتش چیزی به نام توبه ما نداریم هر چند موبد ما در زمان ساسانی برای که بسیاری می رفتند به طرف آین مسیحیت که تازه وارد ایران شده بود توبه داشتند اونا کشش براشون توبه می کرد اون گفت نه نرید مسیحی بشید ما خودمون یه چیزی می نویسیم و پایان خورده وستا ما یک سرویی داریم به نام پتت یا پشیمانی سرود که دیگه مردم نرن و خودشون پشیمانی خودشون رو به کلام و به باور خودشون بیارن تا از وجدانی دیگه خطایی نکنند. فص 16 درباره زنان دشتان هست که اشاره کردیم و چقدر ما آداب و رسوم داریم برای این زنان دشتان که عادت ماهیانش رو داشتن. فص 17ام برطرف کردن موی سر و ناخن هست که بهش اشاره کردیم و فص 18 به پیشوایان دینی اشاره میکنه که تا یاد نگرفتن تمام بخش اوستا و فلسفه زرتشت را به کار دینی نپردازند و این یه یادووری خوبیست چون ما اکنون داریم خیلی ها که به اون مقام موبدی یا به مقامی که باید برگزار کننده آین های دینی برسند هنوز اون آگاهی کامل و کافی رو ندارند و به هر حال دست به کار میشند که این هم اشاره وندیده هست که این کار اصلا تازیانه داره و این کار درست نیست پس 19 هامش اشاره میکنه به بهترین حکومت که از آن درویشان و ضعیفان است. همون مستمندانی که بعدها هم, هم اشاره شد و یه واجهی به کار میبره به نام دریگو بیو کسانی که به خاطر دینداریشون آسیب و آزار میبینند و اینها از یک شطره یا توانمندی مینوی برخوردار هستند و باز به سوشیانت اشاره میکنه. سوشیانت هایی که خب پسطی جداگانه دو ای ایس باید صحبت بکنیم که چگونه ظاهر میشن فصل بیستم از یک پزشکی نخستین پزشکی یاد میکنه به نام عطرت که چگونه بیماری هایی رو توسط پنج رو پزشکی که اون موقع وجود داشته بهش بعیش از اون میگفتن داتو بعیش از اون کلیتو بعیش از اون اروورو بعیش از اون منترو بعیش از اون پزشکی های مختلفی که ما در فروردین یشت بهش اشاره کردیم گیاه پزشکی کارد درمانی اینها در خود اوستا در وندیداد اشاره میکنه در فصل 21 باز اشاره به آب و باران و سپیددم و شامگاه و خورشید میکنه و اینکه چگونه نیایش بکنیم ما این پدیده های طبیعی رو و آخرین بخش وندیداد درباره باور به سنویت و زربان پرستی است که هرمزد و اهریمن میدونید که در زربان هر دو به سازنده این هستی هستند و هر دو روبروی هم و هر کار که اهورامزدا رامزدان میخواد انجام بده در باور زروانیست احیباً نمیگذاره اون کار به خوبی انجام بشه برحال این جایگاه وندیداد را من در این نشت فقط گفتم که جاشو بدونید اصلا سروده های نیست مقایر هست مناگون هست با پیام اشو و زرتوش و ناهمگون هست سروده های زرتوشگاته هاست که ما اون رو به نام کتاب دینی زرتشتیان میشناسیم و درس اخلاق هست درس رفتار کردار نیک بسن متمایز هست با احکامی که در وندی دادونی سراسر احکام هست این احکامی که بقیه دارند این هم نوعی حکم و دستور هست مردم و مغان پیشنهاد دادن برای روزگار کوهن سرزمین ایران